بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين قال المؤلف رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته باب لا يؤذي جاره حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو يحيى مولاد جعدة ابن هبيرة قال سمعت أباه هليرة رضي الله عنه يقول قيل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل وتصدق وتؤذي جيرانها بلسانها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا خير فيها هي من أهل النار قالوا وفلانة تصلي المكتوبة وتصدق بأثوار ولا تؤذي أحدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من أهل الجنة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرح الأنبياء وسيد المرسلين واله وصحبه أجمعين أما بعد. 57مین باب از باب کتاب ادب مفرد امام بخاری رحمه الله باب لا یؤذی جاره کسی همسایه‌اش رو اذیت نکنه و بگر اذیت کرد چی میشه رو هم داره 88مین حدیث حدیث ابوریه رضی الله عنه که میگهات قیل للنبی صلی الله علیه وسلم يا یا رسول الله ان فلانه تقوم الليل وتصوم النهار گفته شد به رسول الله صلی الله علیه وسلم سلام ای رسول الله فلانی نماز شب میکنه و روزم روزه گیره و تفعل و تصدق و تؤذي جیرانها به لسانها اعمال نیکی انجام میده نماز میکنه صدقه میده ولی غیر از اون شب به نماز شب و روزش ولی یک مسئله تو پرانتز در کنار این اعمال نیک تؤذي جیرانها به با زبانش همسایگانش رو آزار میده این زن اسمش یاد نشده زن فلانی و قال رسول الله صلی الله علیه و لا خیر فيها هي من اهل النار خیلی در این زن نیست جهنمیه با چی جهنمی شد این زن با زبانش جهنمی شد با آزار اذیت انسان نباید این زبان را کم بگیره زبان انسان را جهنمی میکنه اینجا هست یکی بیادتون باشه که در حدیث گفتین رسول الله صلی الله زن بد اخلاق رو باید شخص سلاق بده بد دهن بد زبان مؤمن باید اخلاق داشته باشه حسن اخلاق و رفتار داشته باشه باید تعاملش نیک باشه همون اخلاق بدت همون زبان تندت زبان سیاهت از های جهنمیانه زبانت یعنی اگر شخص ببینی که بددهنی و بد زبانی میکنه این حدیث را بیاد بیار خیلی از دعا هست ما کمیش میگیریم که جز لوازه میشه ربنا هبدنا من ازواجنا و ذریت قررت اعیون و ذریت نه قررت اعیون لازمه نور چشمان چیه خوش اخلاقی خوش رفتاری خوش برکردی خوش دهانی. از الله بخواهیم جزه لوازه میشه از شقاوتمندی و از بدبختی و خاری و ذلت اینکه انسان اسیره انسانه به اخلاقی باشه الان میخواد زن باشه میخواد فرزند باشه میخواد همسایه باشه از شقاوته انسان خسته میشه روحش روانش هم مقمش شده این الان با این همسایه چه کار بکنم از دست آزار اذیتش و از دست زبانش لا خير فيها كلمة سبوك نيسا كلمة كوشيك نيس لا خير فيها إن فلانة تقوم الليل تهجد ميقنى يقول لا خير فيها تهجدش بدادش نخر بقاتل زبانش لا خير فيها خيرتش نيس إنسانك بدهنة بدزبانة خيرتش نيس هي من أهل النار عز أهل جهنم قالوا فلانة تصلي المكتوبة نمازفارز رميخونة وتصدق بأثوار يعني صداقمي ده بوان كشكي خصوصا آدم کشک و ناچیز میشونه که معمولا انسان نان خوشک، کشک خوش این چیزها رو کم میگیره. معمولا نزد دامدارا و نزد بوزی بزی گوسفند چیزی داره برای خودش مثلا برای نگهداری اون شیرش تبدیل به ماستش میکنه بعد اون چکیدش میکنه و از اون کشکی برای خودش و برای بچه‌هاش میذاره که به هنگام نیاز خوردش بکنه و بخورن و به عنوان یه قوت نگهش داره. خب این چیز ناچیز رو هم صدقه میده در توانش همین کشک خشک. ولیکن يعني بوزي قسفن دينا دارك سدر قبل دي ولكن لا تؤذي أحدا اهه هكذا روه زار عزياد يعني اكتفا کرده ومنهم مختص انسته الرتبة اكتفا کرده بهون درجة چي؟ درجة ايمان فقال الرسول الله صلى الله عليه وسلم هي من أهل الجنة انزان بهشتية انجا چون ظالمون لنفسه شد ثم الكتاب الذين صفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه وزار عزياد بذبان بدغران جهنمی شود. یک روز وارده بهش میشه ولی ایکن چون حقوق دیگران را پایمال کرده روز قیامت حساب کتاب میشه و با گناهان دیگران شاید عقوبت بشه اگر حسنات نداشته باشه. حالا بسیگی داره که چقدر این آزار اذیتت بوده و نگاه کنید شناعت و قباحت و سنگینی این جرم و گناه یعنی چقدر این بد اخلاقی و بد دهنی سنگینه که رسول هستن با این موجود که سبب میشه انسان با این اعمال سابقون بالخیرات به درجه احسان برسه ولی که این به جای پیش افتادن پس افتاده این زن این شناعت و سختی اون جرحی هست زخمی است که ما با زبان ایجاد میکنیم با دشنام با ناسزا گفتن و آزار اذیت دادن دیگران با دهنمون با زبانمون چقدر سنگینه که کل این حسنات این زن رو نابود کرده. روزا روزه میگیره شباه حج میکنه ولی که زبانش او رو جهنمی کرده یا من اهل نار خیلی سخته خیلی سخته. یک کسی همسایت رفیقت را برنجید با زبانت اون ناسزات اون اذیتت اون آزارت یک حرف یک حرفه تو آسون گرفتی کل اون تعجدت اون اعمال نافلت همه رو نابود میکنه همه رو بین ببره. إن كُشزة، إن هش إن توبيخه، بلى. قال المؤلف رحمه الله حدثنا سليمان بن داود ابو الربيع قال حدثنا اسماعيل بن جعفر قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. 89مین حدیث فرموده رسول الله صلی الله علیه وسلم لا يدخل الجنه من لا یامن جاره بواقعه لا یامن جاره بواقعه لا يدخل الجنه ورده بهش نمیشه گفتیم نصوص چیه بعید نفی دخول بهشت برای کسی که همسایگان از آزار و اذیتش در امان نیست بواقعش آزار و اذیت سختی بلا و مصیبت نفی دخول بهش شده برای کسی که همسایگان از شرش در امان نیستن نفی دخول بهش یعنی این شخص خالد مخلد در جهنم میمونه یا یک روزی وارد بهش خواهد شد وارد بهش خواهد شد و احتمال هم داره وارد بهش اصلا هم نشه چه موقع؟ حالت اول اینکه این, این نففیدللت بر این بده که اصلا وارد بهش نشه میشه شخص به خاطر آزار و اذیت به همسایه اصلا وارد بهش نشه بله میشه چه موقع وقتی که استحلال واقع بشه بگی، رسول الله صلی الله علیه و به خودش گفته اون چیزی که نبوی میگه شخص مستحل این حرام بشه احد هم میگه انهم احمولون علی من يستحل الاذا کسک ازر ازیت را میگه که لایقشه دشمنام بهش میده ناسزا بهش میگه بعد میگه رسول الله صلی الله علیه و من منع که انسان همسرش آزار ازیت بده بعد میگه که چی میگه نه این که لایقشه این خودش میدنید فلان کاره هست، فلان کاره هست، فیلان این تر برشم بهانه هم میتراشه میگه که این حالت اول مستحله فهذا کافر لا یدخولها اصلا و الثانی معنه جزاؤه ان لا یدخولها وقت دخول الفائزين. اون موقعی که اولین که وارد بهش میشن بدون حساب از زبره اونها واقع نشه، از جمله اونها نشه، اونهای که بدون حساب ولا بهش مشان سری از جهنم عبور میکنن بدون اینکه عذاب ببینه میگه جز اون کسانی که پیشگامانن به سوی دخول به بهش از اون پیشگامان نخواهد بود این تعویل دوم و تفسیر دوم این حدیث به سوی اشاره نمی کنه ابن حجر هم وقتی که در پتال باری میاره باز هم همین احتمالات رو میاره میگه یحتمل يكون المراد انه لا يجازى مجازات المؤمن بدخول الجنه من اول وحلت مثلا اولین اهل وارد نمیشه اون هایی که پیشگامانا جز اونها نخواهد بود. او انه ها در خرج مخرج زجری و تغلیض و غیر مراد. و یا اینکه از باب غلزت و شناعت اینکار رسول الله صلی الله علیه وسلم گفته که وارد بهش نمیشن ولی خب وارد بهش خواهند شد. هرچکل این بعیده. قبلن یک وجه سبومی هم ما گفتیم اگر یو هست. نفی دخول بهش. گفتیم که وجه سبوم هم اینکه عدم دخول به بهش، بهشتی خاص باشه چنانچه رسول الله صلی الله علیه و آله می فرمایان لا يدخلوا حضیره القدس و لا عاق منان کسی که همیشه مست میکنه و حقوق والدین میکنه و مننت واسط دیگران میگذاره این شخص وارد حویره قدس این جایگاه خاصی در بهشت از اون محروم میشه این عدم دخول بهشت اون بهشتی هست که الله گذاشته برای اونهایی که حق همسایگی رو به جا میارن این شخص با آزار اذیتش از اون فضیلت از اون جایگاه در بهشت محروم میشه به همین صاحب کتاب فیض الباری میگه فإصراره على هذه الكبيرة مظنة حلول الكفر به فإن المعاصي بريده ومن ختم له بالكفر لا يدخلها أولاً احتمال أنك صاحب كتابيز شخص مصرر كبير إصرار منه شايد واقع در استحلال إن حرام يعني حرام ربا لكي تجويز أو هو في المستحلي أو المراد الجنة المعدة لمن قام بحق جاره أو إنك مقصد بهشتي خاص باشه. که آماده شده برای اونهایی که حق همسایه را ادا می از اون بهشته اون شخص محروم بشه قلی باب بعدی با با قال المؤلف رحمه الله باب لا تحقیرن نجارت لجارتها ولو ترسن و حدثنا اسماعیل ابن عبی اویس قال حدثني مالکون عن زید ابن اسلم عن عمر ابن معادن الاشهلی عن جدته رضي الله عنها انها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نساء المؤمنات لا تحقرن امرأة من كن لجارتها ولو كراعشات محرق فعندما هشتومين باب السحية دم مفرد امام بخاري باب لا تحقرن جارت لجارتها ولو فرسن ايو فرس شاتن فرسان. اس بزير زنو قفته مشه الساب و قائنشو و انسان در پاهاش ولی حیوانا، به اون سمشون فرسن گفته میشه کراع هم گفته میشه از اون و استخانهایی که گوش روش نیست از استخان حیوان مثل پاچه ولی که پایین پاچه هست از اون سم میشه معروف را کم نشمارید امان بخاری میگه از همسایتون حتی اگر پاچه ی حیوان باشه ولی او فرسنه او فرسنه شاعته حدیث عمر ابن معاد میاره از مادر بزرگش که می قال لی رسول الله صلی الله علیه وسلم یا نساء المؤمنات ای زنان مسلمان سخنش خاص زنانه یعنی ای زنان فاضله مسلمان یا زنانی که ایمان وردید و اهل سلاح و اهل ایمانید ایمان یا ای نساء المؤمنات لا تحقرن امرأتون من کن لجارتها زنی شما چون این قضیه در زنان بیشتر پیش میاد برتر بینی خود در زنها بیشتر از مرد است به خاطر همین تمسخور و استهقار از زنها بیشتر رخ میده تا مردها یعنی اون چیزی که ما در سنت هم مثال زدیم قبلا اون نه عایشه هم درش واقع میشه که تو میکنه ازش اون که به سفیه همسر رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت انا قسیره قد شكوته کنایه خب این استهقاره در زن بیشتر پیش میاد تا در مرد یا اون که زینب بنت جاح وقتی که در حجت الوداع برمیگشتن به مدینه شطور صفیه شطورش پاش شکسته میشه بعد رسول الله صلی الله علیه و از شطورات رو بهش بده چند تا شطور داشت گفت یکی از شطورات حداقل بده به این همسرم که شطورش پاش شکسته قال افقر يهوديتك قرض بدم به اون یهودی زادت بعد رسول الله صلی الله علیه و در رجوع از حجت الوداع باش حرف نمیزنه ذلحجه محرم سفر تورابیل اول قبل از وفاتش که باش صلوات میکنه حجرش میکنه اون کسی هم که الله عقدش بساز آسمان هفتم افتخار میکنه که عقد در آسمان هفتم بسته شده که میگه توجیهی که فکر کردم که طلاقم واقعا شده به خاطر چه کلمه این انجیلین توبیخ میشه افق رو تک به اون یهودی زاده قرض بدم حالا شما نگاه بکنید چقدر از خود رخ میده فلانی این بلوچ این افغان این عرب شاید تک تک ما اینجا که نشستیم، ما یک جایی از دهن ما در رفته باشه نگید که در نرفته لا اله الا سبحانه که این نکنه من از ظالمین رسول الله سبحانه مومن عایشه یک کلمه گفتی ها یک کلمه قدش کوتاه ولی این کلمت آب دریا رو غالوده میکنه خیلی برای عادیه ولی نزد الله سنگینه کسی را به نجادش به اصلش به نسبش تحقیر بکنی با تحقیر ازش یاد بکنی وای بر تو وای بر چرا وای؟ وای جهنم والله سخت جهنم الله سان با یک کلمه جهنمی میشه با یک کلمه که خیلی آسونش میگره چرا آسونش میگره چون حدیث الاسلام نمیخونه اگر میخون میدونست نرفته که بخونه نگفتم بهش خاطر همین انسان از جهل که این چیزها رو خیلی ناچیز خیلی عادی میشماره در صورت که نزده الله عظیمه یک قیبت صحابیش مر النبی صلی الله علیه و سلم بقبرین فرا انهما يعذبان وقال ما يعذبان من کبیر رفت میشه اسکن دو تا قبر الله نشونش میده رسول الله صلی الله علیه و دو نفر دارن عذاب میبینن فرمودن ما يعذبان من کبیر فگنا کن این دو صحابی انصار انصاری که نصرت دان مهاجرین رو رسول الله صلی الله علیه و سلم یاری دادن پیشتازان در اسلام الله تعالی رضایت کرده ولی کن الله عقوبتشون کرده در قبر قبل از شاید در قبل تابان اون گناه رو پس بدن تا آخرت دیگه گناهی نداشته باشه حساب و کتاب نشه فکر نکنید که عمل بزرگی هست که اینها رو دوچار عذاب کرده انهم لا و ما يعذبان من کبیر فکر نکنید بزرگ اون دو تا عمل و انهما لبكير بلکه بزرگان یعنی نزد الله بزرگه چی اون دو تا عمل فاماحدهما فكان يمشي بالغيبه وفي روايه بالنميمه یکیشون اهل غیبت و یا نمامی بود غیبت می‌کرد با غیبت حق نفس و اما الاخر فکان لا يستنزه و در لا يستر من بول در مقابل نجاست خوش یا پاک نمیشو خودشو خوب نمیداشت استطاب نمیکر که اون خودشو خوب نگه نمیداشت که نجاست و بدنش برخورد نکنه یک نجاست سببیشه که نمازت قابل قبول نشه نعمال ظاهرش کار بزرگی نیست قدم خودشو پاک بشوره تمیز بکنه با آب یا خودشو نذاره که نجاست و ظاهرش عمل سنگینی نیست بزرگ نیست ولیکن جرمش سنگین نزد الله میتونه ترکش بکنیم قلیان اسه المؤمنات لا تحقیرانه امراتون من کنن لجارته اما سفرموده الله لا يسخر قوم من قوم این دیگه کاری به مسلمان و غیر مسلمان نداره هر همسایهی که دارید حق آزار ازیتش و تحقیرش و تمسخورش ندارید لا يسخر قوم من قوم هر قومی به قوم دیگر هر همسایه‌ای که داری لا تحقرن امرات من كن لجارتها تحقیر نباشه در شما زنان مؤمن ولو قرعشات محرق یعنی هر که به شما از همسایه‌تون هدیه بدن پاچه اون حیوان یا سمش که گوشتی روش نیست حتی اگر اینجوری نسخه بهتون بدن که گوشتی هم روش نباشه تحقیرش نکنید تحقیرش نکنید پس اصل هدیه را نباید بکنه به هدیه هست که حتی اگر کوچک باشه روز قیامت ستری سایه بر سر ما میشه در مقابل عذاب و حقوبت الهی در صحنه محشر قبل از رد شدن و عبور از روی پل سراد روی جهنم حجابه سایه سایه داره اون عملت بر تو در اون صحنه محشر که افتاب اومده بر فرق سرت رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماین کل امرین فی ظل صدقته کل امرین هر کسی در روز قیامت زیر سا حتی یقلا بین الناس تا اینکه بین مردم قضاوت بشه این حساب و کتاب بشه تا از قول صدق رد بشه صدقه تو ترا پناه میده از عذاب الهی در صحنه وحشر ما نیازمند صدقه ایم تحقیرش نکنیم چه در دادنش چه در گرفتنش اگر کسی بهمون داد اون همسویه رو تحقیر نکنیم هر کسی به اندازه یه قال المؤلف رحمه الله حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي دعب قال قال حدثنا سعيد المقبري عن أبيه عن أبيه هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمات يا نساء المسلمات لا تحقر النجارة لجارتها ولو فرس ناشات نباج یکمین حدیث از زبوره رضی الله عنه میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند یا نساء المسلمات یا نساء المسلمات اونجا مؤمنات اینجا مسلمات دو بار تاکید میکنه رسول الله صلی الله علیه و سلم لا تحقرن جارت لجارتها زنی همسایه خودش رو در مقابل اون معروف و احسانی که میکنه در حقش تحقیرش نکنه و لفرسله شات هرچند که اون همسایه اسخونی بی ما مصومی که گفتیم پاچه یکی گفتی بهش هدیه بده. هیچ وقت تأخیر نکنید هرچند که غندک باشه. ما باد به دو زاویه به حدیث نگاه بکنیم یکی این که زاویهش ما گفتیم یک قسمتش به اونم این که منی که به من هدیه داده میشه از همسایه، هدیه همسایه را ناچیز نشمارم. تحقیر نکنم. و این زاویه را ما میتونیم وسیع‌ترش هم بکنیم دیدمون نسبت به اون مسئله به نسبت خودمون. در مقابل اون هدیه‌ای که بینیم چرا در حدیث گفتیم هر کسی در زیر سایه صدقه‌شه در مقابل صدقه دادن اون فعل نیکی رو کم نشموری ما وظیفه خودمون در حد وسعمون توانمون انجام بدیم در حد وسعمون توانمون انجام بدیم اون چیزی که میتونیم در واسعه هست و الله که از متقیان میپذیره و قبول میکنه و انسان در زیر سایه صدقه‌شه هر کسی در حد توانش بله قال المؤلف رحمه الله باب شكاية الجار حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا محمد بن عجلان قال حدثنا أبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رجل يا رسول الله إن لي جارا يؤذيني فقال انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق فانطلق فأخرج متاعه فاجتمع الناس عليه فقالوا ما شأنك؟ قال لي جار يؤذيني فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق فجعلوا يقولون اللهم لعنه اللهم مخزه فبلغه فأتاه فقال ارجع إلى منزلك فوالله لا اوذيك پنجه النهومين باب اذا باب صحيح هذا مفرد باب شكاية الجار شكايات. گلایه ناراحتی که همسایه از همساییش می‌بینه عقوبتی داره من شاکی دار ام از همسایه به خاطر آزار و اذیتش این حدیث رو میاره که دلالت رحمه الله حدیث 92 وم حدیث ابوهری الله عنه که قال رجل یا رسول الله مردی گفت رسول الله ان لي جار یؤذینی همسایه‌ای دارم اذیتم می‌کنه فقال انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق برو اسباب وسایلی که در منزل تس را بذار تو کوچه هرچی تو خونی داری بیار تو کوچه بذار فانطلقه فانطلقه مطاعه سبحان الله نگفت چرا چرا این کار بکنم دستوره اومد مشوره گرفت مشورت گرفت فورا دم رفت اون مشورت رو انجام داد نکنید. المستشار و مؤتمن، کسی که ازش مشورت میکنید اولا باید نگاه بکنید امین باشه و اون امین اگر مشورتتون داد باید به مشورتش عمل بکنید نه اینکه شور میگیری و عمل بهش نمی کنی المستشار موثمن باید موثمن باشه هم از لحاظ اینکه خودش در خودش امین باشه و با اهلیت مشورت رو داشته باشه هر کسی در تخصص خودش الا مهندس در کار خودش پزشک در کار خودش شیخ عالم در کار خودش کسی که ازش مشورت میگیری باید مشورتش هم بپذیری مشورتش هم باید بپذیری نه اینکه شانس تو امتحان بکنی یا مثلا رایزنی بکنی حالا من دارم رایزنی میکنم اون مسئله دیگه هست وقتی که تو شور میگیری از یک شخص امینی را باید شورش هم بپذیری الله گفتم ما هرچند که انسان امین و مؤهل در این زمانه کما مثلا حدیث میاد حدیث عبدالله بن عمر زنه تسلاخه میاد در تهارت هم نبوده اجازه تلاقش هم داشت طلاقش بدعی بوده چون زن باید یا در توری باشه که جماع صورت نگرفته یا در تو طه... یعنی در حیز نباشه اگر در حیز باشه طلاقش بدعی مرتکب حرام شده مرد طلاق بده گناهکاره و همچنین اگر طلاق بده در توری که جماع صورت گرفته بود هم گناهکاره یعنی باید توب بکنه مثلا اینطوری نیست که طلاق مردا فکر بکنن. هر وقت خواسان زنشو طلاق بدن نه در حیز نمیتونن در اون طهری که نزدیکی هم کردن نمیتونن طلاق بدن. واسط بکنم پاک بشه، 7 روز حیض سلام بشه، حالا بعد اجازه داره تلاق بده. عبدالله بن عمر رجله میکنه مثلا شو طلاق میده. عمر بن خطاب میاد نظر اصلا سلام میگه عبدالله بن عمر زنشو طلاق داده. بعد میگه که بهش دستور بده به پدرش میگه برو بگو این عمر بن خطاب رضی الله برو بهش بگو زنشو برمیگردون بعد خواست طلاق بده. چندین مسئله پیش میاد بین عبدالله بن عمر والا در همسرانش و بین عمر بن خطاب او خب یه جای عمر بن خطاب میاد میگه که عبدالله بن عمر میگه زن تو طلاق بده خب عبدالله بن عمر مونده تو این که آیا باید حرف پدرش رو بپذیری یا نه رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه باید دستور پدرت رو عمل بکنید اسم ابا اطاعت کن از پدرت خب علما میان میگن تو پرانتز یعنی اگر پدر آدم عمر بن خطاب باشه باید آدم حرف ندین که پدران خود ما جایگاهش بس سر ولی اون ایمان و اون تقوای عمر میخواد که ما باید چشممون رو ببندیم در مقابلشون و حرفشون رو بپذیریم این احلیت مهمه پس شور و مشورت اگر داریم از کسی بگیریم که مؤهل باشه و امین و دیندار باشه از هر کسی شور نگیریم و اگر هم شور گرفتیم شور رو بپذیریم چنانچه این صحابی رسول الله صلی الله علیه و وقتی که بهش گفت که وسایل خونتو بزار تو کوچه اومد فوراً وسایل‌ها رو گذاشت تو کوچه فاجتمع الناس عليه مردهم جمع شدن فقالوا ما شأنك؟ چرا؟ گفتم راه دی مسلات وردی تو قال لي جار يؤذيني همسيه دارم اذیتم میکنه فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال قلت امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم گفت فرمودن انطلق فأخرج متعك إلى طريق رفتم برسول الله صلى الله عليه وسلم گفتم گفت که مسلاتم زات تو کوچه فجعلوا يقولون صحابه قراد میشدن میگفتن اللهم لعنه اللهم اخزه بار الله لعنتش کود بار الله حقیرش کن زلیلش کن فبلغه اون صحابی که همسایه رو آزار و اذیت می‌کرد اومد بعد دید که شنید که همه دارن لعنتش می‌کنن شنید اومد نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم فقال ارجع الى منزلک، فوالله لا اذيه باز نگار بخونند والله دیگه آزار و اذیتت نمیکنم دیگه اذیتت نمیکنم صحابی دارن لعنت میکنن اسمم میبردن بار الله لعنت کو فلانی که اینو داره اعذیت میکنه که این وصالاش تو کوچه رخته حالا اینجا ما احکامی هست برداشت میکنیم از این حدیث. احکام این حدیث. نراوی میاره در کتاب ازکار و شیخ بنباز باز میاره و البانی و غیر همه اشاره میکنن برداشتایی که از این حدیث شده یک اینی که غیبت ما مجوزش داریم در بعضی از حالات. غیبت حرامه در بعضی از حالات درسته. یک جایی که ظلم بر ما واقع شده. مثلا این همسایه و کچرا واسه تو بیرون رختی فلانی همسایه‌م احمد محمد زید علی ازیتم کرده الله لعنت بکنین علی این احمد این فلانی کاذیت کرده لعنه خاصه درسته؟ بله درسته و پس چرا رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودن المؤمن ليس باللعان ناقصی مبالغه و مت مؤمن زیاد لعنت نمی کنه اینجا این لعنت خاصه اون عامه تو زبانت بلعنت باز باشه یه جایی نیازه که اون شخص به خاص لعنت بشه مثلا اینجا شد یا نشد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فعلا اصحاب را تایید کرد که تاخیر بیان عن وقت الحاجه لا يجوز تاخیر بیان هم درستی است که رسول اعظم کار این صحابه منکر باشه و بعد به تاخیر بندازه پس کارشو تاییده و جاهای هم خود رسول الله صلی الله علیه و آله مراد تکلیف داده که مجاهرین به گناه را لعنت خاص بکنیم مثلا گفتند الله در عجز واقعیم چون جهل واقع بر اومد. رسول الله صلی الله میگه زنان میاد به مساجد بازی زیورالات لباسی پوشیدن که نپوشیدن از خلاص لباسه تنگ و شفاف و غیره نساء و قاصيات آریات بعد از اون حدیث میگه فلعنهن فانهن ملعونه لعنتشون بکنید یعنی از توبیخ و تحقیر نسبت اون گناهشون حالا میخواد شما زنان والله لعنتتون بکنه یا الله بعد حجا لعنت بکنه از باب اینکه زجر روشن چنان چه اینجا در این حدیث داریم این, این سننته حالا حداقلش حد انسان نمیتونه علنیش بکنه جهارش بگه که تو سیام نمیشه خصوصا با جهلی که در امت هست انسان حداقل دخل بین خودش و زن و بچش الله لعنت بکنه زنانه بعد حجاب بچش بودونه اون دخترش بدونه که فردا آلوده نشه به این حجاب فکر نکنه کار این زنان درسته که پدرم نگاه میکنه بدتر از اون مجاهره پدر جلو فرزندان کانالای تلویزیونی گرفته از این کانال به این کانال نگاه اخبار میکنه و زنای و یا مبالش دستشه از این صفحه انستگرام و این فیسبوک و این نمیدونم کانال و شبکه و صفحه به صفحه دیگر زن بچهش هم می‌بینن این زنانه یک زن دو زن العین و تزین زنها النظ مرتکب این زنای چشم میشه خب این تقریر فعلته برون فعل شنیع زنانی که مستحق لعنن تو باید لعنت میکنی به جای لعنت داری تماشا می‌کنین دارن لذت می‌برن از نگاه کردن این چیه این مجاهره و کل امتی معاف الا المجاهرون همه امت شوادت الله ولا رو بغفره عفو کنه ازشون مگر اونایی که مجاهره در ها میکنن تو وظیفه شرعی دلعن انجام ندادی خودت هم مرتکبش میشی خودت هم با اونها آلوده میکنی با نگاه کرده به اونها تا پس اولین برداشتی که این حدیث شد این که غیبت در بعضی جاها درسته اولین جا وقتی که ظلم بر انسان واقع میشه ظلم بر انسان واقع میشه کسی بهش ظلم کرده بر نست قاضی یا حاکمی کسی که بتونه نه که بر سر منبر بگه منبر امانته منبر پایگاه خصوصی شخصی خطبا نیست که بیان اونجا با بدگوی و ناسازگاری بردلشون رو بکشن جای خصومت های شخصی با فرماندار و استاندار و با فلانی و فلانی نیست منبر جای تبلیغ وحی الهیه منبر جای چیه؟ تبلیغ وحی الهی. پس اگر در ظلمی واقع شدیم با نزد قاضی و حاکم شرعی بریم که توانه اجرای حق یا نصح رو داره یا بتونون شخص رو توبیخ بکنه مثل اینجا که رسول صلی اللہ این حق میده یا اینکه بر نصیحتش بکنه بر حرفش بزنه بزنه این کارت ظلم در حق همسایت پس این که چون بر ما ظلم شده دلیل بر این نیست که ما بر خود ما مجوز بدیم که هر جا رفتیم بدگویی بکنیم بدگویی اون شخص بکنیم پشت سر شرف بزنیم دوم از که غیبت در اون درسته کمک گرفتن و یاری تلویدن برای تغییر یک منکر تغییر یک منکر یا یک گناهکاری به طاعت همسایت نماز نمیاد مسجد فلانی بریم این همسایه بهش نصیحت بکنید بیاد مسجد این تو پرانتزها فکر نکنید اون گشت منظور ما که تو مسجد زاکری میذارن و بعد خودشون میرن در خونه ها میزنن اون نماز خونم میخوام به نماز بیاره این نماز خون مسجد رو ول نمیکنه توی مسجد صفحه اوله کجا میخوای بیاریدش از وقتش گرفتید از در خونش ایستادید کار داره زندگی داره اون بی نماز رو دعوت می دی بعدم اون کار بد ذکر تو مسجد گذاشت این ذکر چی از کجا آوردی آیا این اینجینی کاری رسول الله صلی الله علیه و انجام میداد؟ این کسانی به گشت می‌دورست بعد یکی رو اینجا مأمور میگذاشت که حراست بکنه و نظر الله از این منطقه برکتش رو برداره و برکت الهی در این منطقه و در این پایگاه مستحل بشه واقع بشه. مثلا با خودش بگه یعنی اینا بدعت در این نصحی که ما میگیم یه چیز دیگه هست. نصحی خالی از بدعت سوم از باب استفتا از باب استفتا فتوا هند مادر معاویه رضی الله عنهما اما نزد رسول الله صلی الله علیه و سلام سوال گرفت هند الان به عنوان یک مسلمان اومده سوال گرفت یا به عنوان کافر مسلمان هند کی بود میگن هند جگرخوار و لعنت میفرسته رضی الله عنها الله ازش راضی باشه جرمی مرتکب شد اونجا در جنگ احود درست ولی که اسلامش سبب میشه که چی؟ کل اون گناهانش بخشیده بشه و اینجا عنوان یک زن مؤمنی میان نزد رسول سال فتوا میگیره اگر مؤمن نبود میمد سوال میگره برای دینش دیانتش زن الان از زنان متقی شده فتوا میگره, میگره میگه یا رسول الله این نه ابو سوفیان واجلون شخیه ابو سوفیان پدر معاویه ودی الله عنو مجمعی قادم دست و دلوازی نیست یا پولی نداره پولش کمه میتونم از اون پولش به اندازه نیاز من و فرزندان بردارم از اون پولش قال خودی من ماله بالمعروف ما يكفيكي به اندازه نیازت بدون اینکه لطمه وارد بشه به مالش یعنی بدون اینکه یعنی در حرج بیفته به اندازه نیاز خودت و فرزندانت از پولش بردار خب اینجا الان حالت سوم دیگه فتوا داریم الان اومده از یک عالمی فتوا میگیره به خاطر یک کار آیا درسته این کار رو انجام بدم یا نه شوهرم اینطوریه از یک عالمی شخص فتوا میگیره اینجا غیبت محسوب نمیشه گفتم عالم فتوا میگیره نه اینکه بری به این دوست و این رفیق و تریپون برداری مسئله خصوصی چهارم از باب استنساح اولی داشتیم استفتا الان استنساح داریم تحذیر داریم نصح طلب نصه یا خير خواهية مثل حديثة فاطمة بنت تقیس رضي الله عنها كما نظر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقولون معاوية ابن ابو يسوفيان و ابو جهم خستگاریش کردن رضي الله عنهم اجمع بعد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اصباب النصح نقولون انجا بحث غیبت شخص خستگاری زنی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم حق امانت رو داره المستشار مؤتمن رسول الله صلی امینه این ماده الان در خواست داره نصیحت برای خودش این دو نفر من درخواستاری من کدام یک را قبول کنم رسول الله صلی الله علیه و می اما ابو جهم فلا یا عصا عن عاتقه ابو جهم اساسش از شونه هاش پایین نمیاد حالا یاد دست زن داره بزن و میزنه مشرح شراح حدیث این گفتن که دست بزن داره من کتک می زنا رو کوتک میزنه و بعضی از شراح گفتن که نه منظور و مقصود اینه که سفرهاش زیاده واما معاوية فسلوك لا مال له درويشه معاويه پولي نداره کسی که درويشه پول نداره یک از موهلات ازدواج پوله من استطاع منكم الباء فليتزوج کسی قداس شد هنش میرسه نه اینکه درويش بي پوله تمام در ازدواج دكتر اينو دكتر اونم داره ميخواد خودت خاري ميخواد دكتر مردومم ما خوار بكنين فسلوك لا مال له انكحي اسامه بن زيد با اسامه ازدواج كن خودشان ميگه میگه اسامه خوشم نمی اومد ولی که نصیحت رسول الله رو پذیرفتم و خوشبخت شدن با اسامه توخو نداشتم که الله خیرا رو در اسامه قرار بده پس اینجا نصه اینجا نصه که رسول الله صلی حقی علیه و آله حقی النصره ادا میکنه پنجم حالا در مورد قبلی من مثال زدم فقط استنصاح و نصیحت خواستن و نصیحت کردن این نصیحت فقط در این پرانتز خاصیگاری نذاریدا عموم داره مثلا تو مجلس ما الان ما نود و دومین حدیث از رسول الله صلی عليه علیه وسلم داریم میکنیم. شاید در ضمن این دروس که الان شنزه یا افده درسه یکی یا دو بار بعضی از سران بدعت یا کسانی که در انحراف افتادن ما اسمشون رو بر سر زبون بیاریم غیبتشون رو بکنیم که این ازباب نصحه مثلا اسم سید قدر دو تا از انحرافاتش ما زیاد شاید تذکر و هشدار بدیم یادآوری بکنیم و همچنین برادرش محمد قدر و همچنین حوادارانشون از امسال سلمان عوده و از امسال حوالی و تریفی و, و دار دستش و سلمان علوان و یک دار دسته. شاید در بعض از دروس هم ما نامشون بر سر زبان ورده باشیم و بیاریم ازباب نصحه همونطور که اینجا رسول الله صلی الله علیه و سلم در امر دنیا این زرا نصیحت میکنه ما در امر دین مردم را نصیحت نکنیم کدوم یک واجب تر به نظر شما در امر دین واجب تر نیست که به آخرتش که سعادتمندی آخرتش درش هست از باب اول در دنیا وقتی که به خاطر امر دنیوی درست شد از باب اولات در امر اخروی که به صلاح آخرتمونه برمیگرده به رستگاری مون از باب اول وظیفه منه من اگر نگم گناهکارم من خطا اگر نگم وظیفه نسخ رو انجام ندادم طرف داره سب صحابه میکنه و تکفیر میکنه و قائل خروج بر حکامه احادیث رسول الله صلی الله علیه و با هوا و هوس تضعیف میکنه مثل سوره منالوان اون احادیثی که در سمع و یا در اون آثاری که در مورد حکم بغیر منزل الله مثل اثر ابن عباس و مجاهد و تابوس که اومده که کفران دونه فقط اومدن تضعیف بکنن اون احادیثی که اون آثاری که محل اتفاق اهل أهل السنة اعتقاداتك ازش اهل سنت و اون اعتقاداتی که ازش برداشت شده و اهل سنت روش اتفاق دارن مثل قفتي تحاوی سمع و حاكم از حاکم و نماز پشت سر اون فاجر و هر فاسق باشه خلف كل بر وفاجر چه آدم خوبی باشه چه آدم بدی باشه این در گفته تحاویه دارید در شرح السنه بربهاری دارید در خیلی از کتاب ها اصول اعتقاد اهل سنت لالتایی برید بخونید اعتقادات اهل سنت محل اتفاق نزد اهل سنت حتی اجماع اتفاق هم نقل شده ولی خب میان اینها هم اجماع را زیرپا میذارن هم احادیثی که دلالت داده بر این اجماع هم علمایی که اومدن این احادیس را جماوری کردن در کتاباشون مثلا میان بربهاری رو متهم میکنن که نه این به خاطر دربار بوده، درباری بوده و فلان بوده در نیتشون و در قصدشون در جمعوری اون احادیث اون اعتقادات طعن وارد میکنن. همش به خاطر چی؟ طعن در این علما، طعن در احادیث، همش برای توجیه کارشون، به خاطر که به اون مقصد و مرادشون برسن. بعد من اینجا این وظیفه را ادا نکونم، حدیث رسول الله را میخونم. اسمع واطم. بعد شخصی میاد، این احادیث را نادیده میگیره و خلاف اون فتوا میده و بعد من نیام. نمیگم آب دهن آب دهن من در مسجد پاکه که بود دفنش بکنم این خواست و نجاستشون دفنش نکنم در مسجد کتاباشون خونده میشه بر سر منابر گفته میشه توصیه میشه میخونن جلسات سری دارن تشویق میکنن همدیگر رو به این کتاب ها ما نگیم نه وظیفه است باید بگیم نگم گناهکارم این وظیفه است سفر حوالی دلش خوشه کتاب نمیشه ظاهره الارجا که ثابت بکنه آلبانی مرجعیه درباریه شواهد بر این گواهب ناحقش بر آلبانی کتاب دو جلدی که از اول تا آخرش امام سید قطب گفته و شهید سید قطب گفته سید قطبی که درس دینی نخونده شده علمی شده پرچمداری برای اینها برای فهم قرآن کسی که خودش گفتم درس دینی نخونده سواد دینی نداره برای که خودتم تعلیم دیده در دانجگاه های دینی میبینی خودت را تحصیل کرده دینی میبینی بعد پناهت و استشهاد و دلیلت یک شخصی که در انحراف افتاده هست از گفته اون برداشت میکنی در تخته و خطا دونستن قول یک عالمی چرا چون اون عالم گفته خروج بر حاکم درست نیست چرا چون اون عالم گفته که چی؟ کسی که از باب سهو سهلنگاری نماز ترک بکنه یکی دو نمازی نهی که همدن کل نمازها رو ترک بکنه نه سهلنگار در کوتاهی میکنه در خواندن نمازا چون البانی گفته کسی که کوتاهی میکنه در خواندن نماز کافر نیست پس در نتیجه البانی مرجیه ببخشید شافعی همین فتوا میده مالک همین فتوا میده و حنیفه همین فتوا میده اینا هم اینا هم یعنی و گمراه این هست که جاهایی غیبت کردن میشه وظیفه حرامه ولی که جاهای میشه وظیفه بعد انجام وظیفه میشه اگر من نگم پس کی میگه برای مردم پس کی بازگو بکنه هرچند که طبعاش رو پس میدیم هرچند که طبعاش هم پس میدیم یعنی اونها که هوادارشون هستن دریغ از تهمت زدن و اتهام در نیت ما و در بدگویی و ناسازگویی کمرسی نمی میکنند. این تندرو رو هست، این مدخلی هست، این وهاوی هست، اینها نمیدونم مرجیی هستن، اینها درباری هستن، اینها جاسوس هستن، هر چیزی که از ذهنشون در بیاد در اتهام کمربسی نمیکنم. یکیشون میگه اگر اینها درباری نبودن، میگه آزاد بودن، این احادیث را به مردم بگن و شرح بدن و نمیدونم این رو تدریس بکنم ببخشید نیاز نیست که ما تریبون به دست بگیریم و ازال ناخورسندی بکنیم و بگیم اینجا بر سر منبر که, که چی شده و چی میشه از بیرون نشستن قضاوت میکنن بر ما و الله بین ما و بین اینها روز قیامت قاضیه در مقابل اون نارواها و اون تهمتها و ناسزاهایی که به ما نسبت میدن ما وظیفه شرعی خودمون رو انجام میدیم والله اون چیزی که ما میگیم ما اون چیزی که اینجا میخونیم حرفی که از سخن ما، از زبان ما بیرون میاد والله خود سرانه نیست بعد از تحقیق بعد از بررسی بعد از مطالعه هست، بعد از تحقیقه جرئتش نداریم چون میترسی یک جای پای منبل اخذ زبانمون به لغزه بازخواست بشیم روز قیامت والله ایمان به روز آخرت دارید. والله از حساب کتاب الله میترسی که یک حرف را بزنید که تقبل بر الله و رسولش بشه که روز قیامت تابونشو پس بدیم والله میترسی اون چیزی هست که گفته میشه از ما به دیانت انجام میدیم این وظیفه دینی هست پنجم از حالتهایی که غیبت کردن درسته کسی که مجاهره به فسق فجوره و به بدعته مشروخوره، رباخاره من میگم په گفتم مثلا فلانی گفته بیام دعوت فلان شخص گفتم ببخش نمیتونم بیام گفت چرا؟ اصل در دعوت در عروسی که واجبشه که میاد حرفش و در دیگر دعوت ها گفتن علما که مححبه اچه که گفتن نه در همه دعوت ها واجبه آخر حالا اون بحثش اهدمکاری می نداره اون چیزی که مهمه اصرار کرد که بیا نظد فلانی که دعوتت داده گفتم ببخش نمیام یک بار دو سه بار گفت چرا نمیایی؟ گفتم مگه فلانی رئیس بانک فلانی نبود و نیست گفت که بله گفتم خب حقوقش از چرایه بانک از مال ربا چطور من اون کسی که توله شو درآمدشو امرا رو معاشش از ربا سر سفرهش بشینم دریبتش کردم نمیام تو ربا خوره تعارف هم ندارم نمیام نمیرم نمینشینم نمیخوام لقمه ای از مالش تو شکمم بره رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرما لا لحم يغذي النار به. هر گوشی تغذیه بشه با یک لقمه هم اگر باشه از حرام النار اولابه مستحق آتشه. آتش جهنمه، جهنم اولادتر به این. این مستحق آتش جهنمه. حالا میخواد اون مال ربا باشه، اون مال سرقت باشه. گاهی میبینیم سر خیابون طرف اومده التماس میکنه، انواع اجاره برق و نمیدونم اجاق گاز و ورده میگه 5 میلیون بده اینا همه رو بردار. 50 میلیون قیمتشه میگه 5 میلیون بردار. بعد میان میخوان سری به آبش میکنن که پول تو جیبشون بره، از دستشون راحت بشن که کسی مچشون نگیره که فردا کسی که این فلانی بودی یا فلانی بوده حکم خرید این مال چیه حرام چون میدونی این مال مال سرقته مال دوسیه مال چه حق دیگرانه درست نیست حرام تو میگی فرصت غنیمت بشموری میبینی دهنت آب افتاده جارو که 5 میلیونه با اجاق که 15 میلیونه بعد اومده اینجا همه اینها را اجناسی که 50 میلیون قیمتشه به 5 میلیون داره بهت میده 45 میلیون سود میخای بکنی به همین راحتی فکر میکنی که روز قیامت دیگه حسابی نمیشی نه و اینا اینها هست انسان باید خودش رو محاسبه بکنه یک لقمه خراب به دروغ خوردی تو بازاری هستی قسم خوردی اون مال رو، نو تجارت رو، نو کسبیت ماشینی داری میفروشی هیچ ضربه نخورده ولی اون ماشین چپیه یا اون ماشین نمیدونم موتورش خراب شده و تو هم میدونی ایبرو داری میفروشی و در ازای اون در این غشو کلاهورداری ما را از دیگری داری به ناحق میگیری بدون که اون تن و جانی که با اون مال تغذیه بشه جهنم بهش مستحق مستحقتره ظاهرش معامله از ظاهرش خرید و فروشه ولی که باطن قضیه حرامه و جرم حرامم سنگینه الله از حق حق آدمیان نمیگذره شیشمی جای انسان از باب معرفی وصف یک شخص شخصی را میکنه فلان نابینا فلان کر فلانی که لنگه یا فلانی که یه چشمش گوره وصفه این غیبت نیست چون داری معرفیش میکنی حالا بسیگی داره اگر تحقیرش بکنی که دیگه هم در غیبت افتادی و هم در تحقیر کردن خب سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده و صلی الله علیه و علیه